برلین، آلمان، سه نوامبر 1992 لطفاً صندلی‌های خود را به حالت عمودی برگردانید و کمربند ایمنی را ببندید. ما در حال کاهش ارتفاع برای فرود هستیم. تا دقایق دیگر در فرودگاه برلین به زمین خواهیم نشست. افکار مختلفی در سرم میچرخید در ذهنم جزیات اتفاقی که تمام زندگیم را زیر و رو کرده بود کنکاش می‌کردم. یک وکیل به نام هیلموت و دیدار با او نقطه عطف این سریال ای بود که خود را بر من تحمیل کرده بود و من حتی ای در صحت آن تردید نکردم. تو مادر منی؟ همان نگاه پر استرسی که بعد از شنیدن سوالم در چهره نمایان شد برایم کافی بود. به تطپته افتاد و کمی منامن کرد. بعد هم به گریه افتاد و من را در آغوش گرفت بدون اینکه یک کلمه توضیح دهد. اما من با اصرار سوالم را تکرار می کردم. بالاخره مجبور شد جواب بدهد من تو رو بزرگ کردم من مادرتم حتی اگه تو رو به دنیا نیاورده باشم این ظلم کاری که تو کردی ظلمه من تمام عمرم با یه دروغ زندگی کردم فقط برای اینکه تو خیالت راحت باشه جواب داد دروغ من بزرگت کردم تربیتت کردم اینها دروغه هیچ کوتاهی در حق تو نکردم هیچ وقت من مادرتم. شبها کنارت بیدار موندم. با دردت گریه کردم. با شادیت خندیدم و خوشحال شدم. همیشه ازت حمایت کردم. هرچی که داشتم بهت دادم. چیزی رو ازت دریغ نکردم. همه تلاشم رو کردم تا تو خوشبخت باشی. بگو فرق من با اون مادری که خودش بچش رو به دنیا و... آورده چیه؟ از صدایش پیدا بود که به خاطر عصبانیت اولیه من ناراحت و دلخور است. حرفش رو ادامه داد. اگر هم دروغ گفتم فقط به خاطر مصلحت تو بود. دروغ گفتم تا تو هیچ وقت احساس کمبود نکنی. دروغ گفتم چون تو دلیل خوشبختی من بودی. دروغ گفتم چون سرنوشت به جای چیزی که از من گرفته بود تو رو به من داد. دروغ گفتی به خاطر اینکه احترامت رو توی جامعه از دست ندی. دروغ گفتی برای اینکه مردم نگن تو کار بدی کردی یا یه کار غیرقانونی انجام دادی. درسته. البته برای همین چیزها دروغ گفتم. اما فقط به خاطر تو نه به خاطر خودم. تو و پدرم البته اونی که تا زنده بود ادعا می کرد پدر منه بدون این که به من فکر کنین برام تصمیم گرفتین. این حق من نیست که بدونم خانوادم چه کسانی هستن با چه قیمتی من رو خریدین. دیگه چه کسی تو این دروغ باهاتون شریک و همدست بوده. دیگه چه کسانی این چیزها رو درباره من می دونن که خودم نمیدونم. دونم. خریدیمت؟ من و پدرت تصمیم گرفتیم این راز رو به خودمون به گور ببریم هیچ کسی ازش خبر نداره از من عصبانی نباش از کسی هم که اینجا نیست تا از خودش دفاع کنه عصبانی نباش نظر عصبانیتت باعث بشه حرفهای نامناسب بزنی یا محبت های ما رو فراموش کنی. از جا بلند شد دستش را جلو آورد تا مرا در آغوش بگیرد. اما من او را پس زدم و از خود راندم. دستش را عقب زدم روی کاناپ افتاد و از حال رفت. روزهای طولانی و غمانگیزی را در بیمارستان گذراندم. در وضعیت خیلی بدی قرار داشت. روزی که به خوش آمد با نگاه های سرزنشباری به من نگاه کرد. بالاخره به حرف آمد. گفت تو تمام زندگی می؟ چهره همیشه مهربان پدرم در نظرم آمد. هیچ وقت از من عصبانی یا ناراحت نشد و من رو هم ناراحت نکرد. هر خواسته از او داشتم هر چقدر هم سخت بود اجابت میکرد. هیچ وقت از برآوردن آرزوهای من خسته نمیشد. از دست خودم عصبانی بودم. خود را سرزنش می کردم. کسی را ناراحت کرده بودم که ذرهی برایم کم نگذاشته بود. با این وجود احساس می کنم به من ظلم شده است. چون آنچه که حقم بود بدانم از من پنهان کردند. احساس سرگردانی می کردم. درباره همه کسانی که دوست داشتم به شک و تردید افتاده بودم. آیا من دختر سرهنگ کمال شهید جنگ اکتبر 1970 از واحد مهندسی ارتش بودم مادرم یا بهتر بگویم زنی که مرا بزرگ کرد ادعا می کند بچهی که او برایش سخت زحمت کشید فرزندش محسوب می شود کم بود با حرف او موافقت کنم. به فکر کسی افتادم که مرا به دنیا آورده بود اما او مرا به دنیا آورد و بعد رها کرد پس او هم نمیتواند مادر من باشد احساس میکنم دارم دیوانه می شوم. من آدم بی هستم، گم بیرگوریشه. ای بیگوریشه. چرخ هواپیما بر زمین فرودگاه نشست. به شدت از دست هیلمود خشمگین بودم. من زندگی عادی خودم را داشتم تا اینکه در آن روز نصف با هیلمود ملاقات کردم. وقتی داستانش را شروع کرد آنقدر حرفهایش به نظرم احمقانه آمد که به او خندیدم. اما خیلی زود مدارکی از کیفش درآورد و به من نشان داد، که از آن وقت تا این لحظه به کلی لبخند را از زندگیم محو کرده است. سند ازدواج، گواهی طلاق، یک برگی گواهی شهادت اسلام آوردن و یک نامه کوتاه با امضای پدر و مادرم که در آن به لیلیان اطمینان داده بودند دخترش کاملا سالم و سرحال است و اینکه آنها به سر قولشان هستند و برای کودکشان هم یک اسم مصری انتخاب کرده‌اند. لیلی احساس غریبی در درونم میجوشید. یک لحظه تصمیم گرفتم از فرودگاه خارج نشدم و با اولین هواپیما به کشورم برگردم. به خودم گفتم بر و به این کابوس پایان میدهم. دوباره همان زندگی عادی خودم را از سر میگیرم. بیتوجه به دردهای های که نمیدانم مرا را به کدام پرتاب میکند. اما حالا که همه چیز را فهمیدم آیا میتوانم نادیدهش بگیرم؟ آیا دوباره می توانم همان زندگی عادی قبلیم را داشته باشم بدون اینکه خود را درگیر این موضوع کنم که من کیستم و اصل و نصبم چیست و چه چی کسی مرا به دنیا آورده است آیا توانایی دارم حتی یک قدم دیگر بردارم بدون اینکه کشف کنم چرا مرا دور انداختند و به دست دیگران سپردند باید بفهمم چرا من یعنی فرزندشان را رها کردند مگر فرزند برای مردم با ارزش ترین هدیه ای نیست که به آنها داده می شود موکل هیلموت کیست که خود را به من معرفی نکرد و قرار گذاشت در برلین او را ملاقات کنم؟ آیا مادر اصلی من است که آن ظلم بزرگ را در حق من مرتکب شد؟ چرا از من خواست در اولین فرصت به ملاقاتش بروم و تاکید کرد که وقت زیادی ندارد؟ چرا وقت ندارد؟ آیا من فقط برای کنجکاوی به اینجا آمدم؟ یا آمدم چون خشمگین و عصبانیم و دنبال جواب سوالاتم هستم؟ که می دانم نمک به زخمم می پاشد و درد و, را، درد و رنجم را بیشتر می کند. دردم شدید شد. با انگشت به دنبال دکمه پومپاج مورفین گشتم. دکمه را فشار دادم و داروی آرامبخش در هایم جریان یافت. وقتی دکمه پومپاج را دستم می گیرم متناسب با شدت درد آن را با شدت بیشتری می فشارم. تنها کاری که می توانیم انجام بدیم اینه که دردت را کم کنیم. اما باید بدونی که هیچ امیدی به بهبودی تو وجود نداره. پزشک با این حرف به من خبر داد که پایان کارم نزدیک است. چند ماهی بود در بیمارستان بستری بودم و آنها به دنبال راه درمانی بودند که اصلا وجود نداشت. با جریان داروی مسکن در بدنم دردم از بین رفت و خاطرات گذشته دوباره در حافظه ضعیفم جان گرفت. هر بار که دکمه پمپاش را فشار می دهم صدای شلی که صدای شلیک شروع مسابقات سئول در گوشم میپیچد روی تخت بیمارستان پاهایم را تکان می دهم با این خیال که در حال پدال زدن هستم و دارم دوچرخم را میرانم. سه چهار نفر از دوچرخه سوارانی که در ابتدای مسابقه ضعیفتر بودند پشت سر گذاشتم و بعد از آن حس کردم چیزی با شدت به چرخ عقب دوچرخم برخورد کرد. به سختی رویم را برگرداندم. یکی از رقیبان با دوچرخهش محکم به دوچرخه من کوبیده و با من تصادف کرده بود. چند متر دورتر از دوچرخه هم روی زمین افتادم. سعی کردم از جایم بلند شوم. با اینکه درد شدیدی داشتم، ابتدا موفق شدم. اما همین که یک قدم برداشتم، دوباره افتادم. در یک لحظه تمام رویه هایم نابود شد. استخوان ران پایم خورد شد و آرزوی قهرمانی در مسابقات المپیک کره هم با آن از بین رفت. حادثه تصادف در سئول برای من فقط پایان المپیک نبود. تأثیرش بر زندگیم تا مدتها ادامه داشت. وقتی به کشورم برگشتم، پزشکان اعلام کردند من معلول شدم و دوران زندگی ورزشی من پایان یافته است. اما آنها نمی‌دانستند ورزش برای من فقط یک دوره از زندگی به حساب نمی‌آمد، بلکه تمام زندگیم بود. آنچه به من اعلام کردند به این معنی بود که ورزش مرا رها کرده به من پشت کرده و به روغوایم رونموده است. من ضربه های هولناکی از سرنوشت خوردم. دیگر برایم عادی شده بود. آنطور که بعدها فهمیدم اول پدر و مادرم را به زور از من جدا کردند. بعد هم آنهایی که مرا به فرزند گرفته بودند خیلی زود ترکم کردند. شاید خنده دار باشد که در هر دو مورد این حکومت بود که والدینم را از من جدا میکرد. من اینها را از پروندههای اشتازی فهمیدم که بعد از اتحاد دوباره آلمان در اختیار عموم قرار گرفت. سپ را موقع بازجویی کشتند. هیلدا را نیز به زور از دیوار برلین بیرون انداختند و به غرب برگرداندند. آنها به او اجازه ندادند برای یافتن من تلاشی بکند. اما والدین دوم من یعنی عضو دفتر مرکزی حزب و همسرش را به دلیل مخالفت با حزب کشتند. بعد مرا به پرورشگاه فرستادند. و اینطور به من گفتند که آنها در یک تصادف رانندگی از دنیا رفتهاند. وقتی پرونده ها را می خواندم به نظرم می آمد که یک نویسنده نابغه با تخیل بسیار قوی داستان زندگیم را نوشته تا از روی آن فیلم درام سینمایی ساخته شود. شاید بتوان گفت هیلدا نقش قهرمان اصلی این تراژدی را بازی میکرد. او در تلاش های بیوقفش برای یافتن من دست از جان شسته بود به مدت دو دهه، با دستگاه های دولتی آلمان شرقی مکاتبه و از آنها درخواست میکرد مرا به او بازگردانند. آنطور که در خاطرات روزانهش نوشته بود، حتی یک روز هم از یافتن من ناامید نشده بود. در ابتدای خاطراتش گفته بود که اینها را برای من می نویسد با این هدف که من حتی اتفاقات یک روز از آن روزهای دوری و فراغ را از دست ندهم. پایان تراژدی این بود، که هیلدا چند روز قبل از سقوط دیوار برلین از دنیا رفت بعد از بازگشت از کره، سازمان های ورزشی قهرمانی های مرا نادیده گرفتند و به من بیتوجهی کردند. من دیگر برای اهداف آنها هیچ فایده ای نداشتم در کشوری که همه هم فقط فقط قهرمانیست معلولیت باری بردوشان و فرد معلول به گوشه رانده می شود او باید حاشیه و بدون رویا زندگی کند و نباید هیچ توقعی از کسی داشته باشد از یک قهرمان محبوب ورزشی به کارگر نظافتچی در یک دفتر دولتی تبدیل شدم که موقع راه رفتن هم میلنگید بعد از اینکه حکم اشتغال من صادر شد از من خواستند به خاطر مراقبت که در زمان بیماری هم از من شده بود از دولت تشکر کنم معلولیت سرانجام کار من نبود جسم لغر من آرام آرام تحلیل میرفت شدت درد در تمام اجزای بدنم به حدی بود که دیگر توان انجام هیچ کاری را نداشتم. آنقدر از این بیمارستان به آن بیمارستان رفتم که دکترها دیگر در پاسخ من فقط لب بر برمیشیدن و تکان دادند. آنها از من میخواستند در توصیف بیماری و دردهایم مبالغه نکنم. بعد از فرو ریختن دیوار برلین به پزشکان غرب هم مراجعه کردم که برخورد بهتری با من داشتند. اما دریافتند یافتند که بیماری در سراسر سر بدنم گسترش یافته و اوضاع من وخیم شده است. و به نقطه این رسیدم که دیگر بازگشتی ندارد. فهمیدم مرگم بسیار نزدیک است. آنها با تحصف اعلام کردند. متاسفانه داروهایی که در این چند سال مصرف کردی دلیل اصلی به تحلیل رفتن و نابودی جسمت هست.